I هم نبا شما در حصر پنجمین روز از ماه محرم سرود غم می سرویم و به ساحت مقدس ماموسین علیه السلام و یاران شهیدش ارزه ارادت می کنیم اومدم تا بشینم به زیر پرچم غمه اومدم گریه کنم با نوفه اومدم گریه کنم با نوحه محتشم از غم پیرهن تو پیرنسی ها می از غم پیرهن تو پیرنسی ها یه بار دیگه میگیرم پرشم تو رو دوشم سینه میزنم تا که بگیرم بوی حرمه سینه میزنم تا که بگیرم بوی حرمه سینه میزنم یا عمره بارو زایق آمد سینه می شفا بگیرم زیر پرچمت سیدی حسین جان سیدی حسین جان, جان میزبان حجت الاسلام و المسلمی استاد لاجوردی هستم و اجازه سلام می‌کنم شما خوش آمدید قبول باشه عزاداری بسم الله الرحمن الرحیم من هم به نوبه خودم خدمت شما و همه بینندگان و همه شنوندگان بینندگان این سیمای قومه که ما داریم. از سلام و عدب دارم در خدمت شما هستم اگر اجازه برید بحث رو ادامه بیدیم. خواهش خیلی ممنون و چکرم من شانا فاصله رو میگیریم از مطابق فرما باز میگردیم و می درباره برای خطبه منای حضرت عبدالله سین علیه سلام با شما بیشتر گفتگو خواهیم کردیم. چه گلستانیست است که تاراج می شود چه بوستانی است که ویران می شود و چه گلها و لالههایی که پایمان می شود اینها که اینجا اسیر بلایند آل و ناهند و خاندان رسول الله و در میان آنان گلیست از گلستان دو سید جوانان اهل بهشت و نهالی از بوستان حسنی و شکوفی نورسته از گلستان حسینی و این باد خزانه است که کینه وز ورزانه در کربلا میوزد و در یک نیم روز می کندان چرا نباید با گلها کند جایی دیو میگویند چرا ماتم و گریه و عشق را در بین مردم رواج می‌دهید؟ این ماتم و عشق برای ماتم و عشق نیست برای ارزش هاست پشت سر این ازاداری بر سر و سینه زدنها عشق ریخنها وجود دارد عزیزترین است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه او همون عرضش های معنوی الهیست اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این عرضش ها بود یاد اونهاست زنده نگه داشتن اونهاست حسین حسین به دوستان عزیز و ارجمند از دعاداری هاتون مقبوله درگاه حضرت حق با استاد لاجوردی در روزهای گذشته که صحبت کردیم سعی کردیم که چهار آیه‌ای که مونسن آیه‌ی سلام در خطبه منا در حقیقت از اون استفاده کردن برای گوشزد کردن نقش علما و روحانیون به اونها بررسی کنیم آیه‌ی لاجوردی ای از مطالبی که گفته شد در برنامه گذشته رو بفرمایید ان شاءالله خواهش می‌کنم که از فرمودید ما بعد از اینکه در مورد زمان و زمانه و در حقیقت یه مقدار مختصر بسیار مختصر جریان نفاق در جهان اسلام جریان فکری نفاق جریان مدیریتی نفاق جریانی که نفاق نتیجه اون بدعتها رو اجاد هم با هم صحبت کردیم وارد خود بشد گفتیم از زرد 700 نفر از صحابه تا به این یاران خودشون اهل بیت خودشون بعد از انجام حج واجب در منا جمع کردن دعوت کردن خود رو بیان کردن فقره اول هم فرمودید حضرت چهار آیه رو مطرح کردن آیات بسیار دقیق بودند. جایگاه و نقش خواست علمی و رحبان ربانیون احبار که دانشمندان و کسانی که در حقیقت علمای بزرگ هستند تأثیر گذار هستن اومدن از بنی اسرائیل مطرح کردند که علمای بنی اسرائیل نقش خطیر خودشون رو کوتاهی کردند، انجام ندادند و طبیعتا وقتی جامعه از چشمه معرفت علمای احوار و علمای که دل به خدا دادن جدا شد این جامعه زمینی فساد و گناهکاریش اکل هم آتش خوردن که نتیجه حرام خاری هست و اینکه مبانی غلط پیدا کنند، عرضش های قلط پیدا کنند. قبابی یه جامعه به داشتن ریشه هاش هست و جامعه‌ای که ریشه داشته باشه سمرات خوب خواهد بله. وقتی که دشمنان بخوان ما رو به حساب اقین کنن افتر کنن سعی میکنن سمرات ما رو بگیرن و مرحلی بعد ریشه های ما رو خوش کنن پرزد این حضر رو ایجاد میکنن مبادا شما ای بزرگان به خاطر سکوتتون و اینم ترس از دشمن و یا خدایی نکرده بعضن به خاطر رقبت به اون چیزی که در دست اهل دنیا هست سکوت کنید اشترو با آیاتی فمنن قلیلن ترس و تمه در و رقبت تعبیر زیبایی آقا عبا حسین رو مطرح میکنن ریشه یابی میکنن این دو چیز اگر خدایی نکرده در اونو کسایی که شاخص هستن چراغ راه هستند اونهایی که در خطرات مردم باید به اونا پناه بیارن اونهایی که حافظن اونهایی که سد در اونهایی که حامیان حامی فقرا هستند حامی مبانی هستند حامی دین هستند من یه نوتچی رو تو این پناتز وظیفه دارم مطرح کنم اینو از باب تعبیری که حضرت آقا فرمودن از عبرتهای آشورا و محرم استفاده کنی ببینید چرا دشمنان ما چرا اسرائیل میاد انقدر نسبت به حوزه و علما و وحابیت نسبت به علما و دوری مردم از علما تبلیغ میکنه ما بدانیم دانسته یا ندانسته اگر جامعه خودمون رو به هر از علما دور کنیم بگیم نیازی نداری قطعا هم انقلاب لطمه خواهد خورد. و هم جامعه ما فرزم بگیرید که شما بخواید جامعهتون انقلابی نباشه من یکی از دوستان گفتم گفتم شما فرزم بگیرید بخواید ایران رو حفظ کنید، احتیاج به انقلاب دارید، انقلاب ایران رو حفظ کرده، عزت ایرانی رو حفظ کرده. بخواید انقلاب رو حفظ کنید بعد اسلام رو حفظ کنید. و حفظ اسلام به حفظ حوزه های علمیه است این تعصب من طلبه هستم نه از این جهت است که اگر این که باید نور پخش کنند حفاظت کنند اگر بخواید بهداشت حفظ بشه و طبیب جامعه حفظ بشه بله. مراکز بهداشت ما موقعی میتونن غنی باشن آ... نمیدونم آم... چیزای وسیله بدون یک طبیب مجرب جامعه بدون یک روحانی توانمند و عادل و عاقل و عالم و زاهد به تعبیر ما حفظ نخواهد شد هست فرمودن بترسید از زمانی که شما از مردم کنده بشید و مردم از شما کنده بشن لطمه میخورید آیه آخر که داشت با هم صحبت بکردیم بله. و من چون اگر اجازه بدید تیتر رو از کنم بله. چون هفته امر معروف و نهی از من هست بله. یکی از اهداف آقا ابو عبدالله الحسن هم از حرکت و قیامشون رو بنابر بیانی که خود دوشون جاشتن معروف و نهی از منکر هست به اون بپردازیم وظیفه عمومی جامعه دینی که هم باید ولی و دوست هم باشن و هم باید یعمرونه بالمعروف همیشه دنبال معروف و خوبیا باشن و همیشه مستمرن از بدی ها همه موظفند. همه به اندازه توانشون، فهمشون، امکانشون، جایگاهشون این اصل رو قرار بدن. و حضرت میان توضیح میدن که اگر در فرصت بعدی که خیلی معلومه که شما شما خستم نشه، ثروت بشه. بله از آیه 71م سوره مبارکه توبه میگوییم. امروز در تقویم دلها روز نازدانه است از گلستان حسنی که عبدالله ابن حسن خوانندش او را کودک نخانید او را کودک نخانید که او دریای معرفت و کوه عشق و وفاست و به یادار آن هنگامی که او ندای حلم ناصر را شنید دستش را از دست امه کشید و به گودال قتل گاه دوید. و بیادار آن هنگامی را که ببینی ابن کب که لعنت خدا و روباد شمشیرش را به قصد حسین علیه السلام بالا میبرد. و ببینی که عبدالله نیز دستش را برای دفاع از امام بلند می کند و بشنوی این کلام کودکانه ای عبدالله را که ای خبیص زاده ناپاک تو را به عموی من چه کار؟ و ببینی که شمشیر سفانه فرود میآید و از دست نازک عبدالله عبور میکند آنچنان که دست و بازو به پوست معلق میماند و بشنوی نبای با ام عبدالله را که از اعماق جان فریاد میکشد و مادر را به یاری میطلبت و ببینی که چگونه حسین علیه سلام او را به آغوش میکشد و با کلام و نگاه و نوازش تسلایش میدهد، دهد سبور باش عزیز دلم پاره جگرم زاده برادرم به زودی با پدرت دیدار خواهی کرد و آغوش پیامبر را به رویت گشاد خواهی یافت. جلبه زاد کبریا شده ای کعبه تیغ و نیزه ها شده ای با تقلا و دست و پا زدنت باعث گریه خدا شدید هزاران جور بچه بی عبدالله در به امش خودش میرسه عبدالله اومده بیرون خیمه زل زده به امو یکی تفنی برونا اومد زخرگان توی شاه شد روان چون قطعه ما عبدالله وایستادی داری نگاه میکنی امون تو دارن میکشن ببین همه دورش حلق زدن امام حسین صدا زد یا اخته اهبسی بچه رو نگهدار نگذار بیاد برای که داشتین امرو برو جلو دست امرو رها کن زینب گرفت جلوی عبدالله رو نگذره یه جمله گفت بی اختیار زینب عبدالله رها کرد صدا زد امه والله لا افارق و عمی امه جان به خدا دزد از بر نمیدار. دارم خودشو انداخت تو بغل امون زخ، زخ، زخ،, زخ یکی، دو تا این دستشان زخ ما پشار آمد و آمد تو دامان امون جزد امام حسین ملاطفت کرد چشمش به یتیم برادر داد با اون جراها تو ها بمیرم صورتت رو خون گرفت هوا از تیرها بارو ابهر ابن کب شمشیری رو حواله امام حسین کرد این نانجیر شمشیر رو ملند کرده الانه که پایین بیاره اگه شمشیر پایین بیاد سر عمون جدا میشه من میخوام بدونم یه بچه یه ده ساله مگه چقدر پاسو داره بم... این بچه تا کنون ندیده بود کسی به اموش احانت کنه دزد گوجه جاورد بلا زدازد یبن الخبیسه اتقتلو امی میخوای عموم رو با گوی و نامجیب در قذب شد شمشیر بالا اومد بیننی و چه بازش شد س کرد خاد تو بغله حسه امام حسین عبدالله تو این بددوندار رو توابوش گرفت و بود عزیزم غه نخور ان الله سییل حون که به آایکت ساهری. الان نزد پدر و جدت میبین <محن> یه رایای دیشت بابا قول دادم خواب دیدم روتن امو جور جور دادم من برای هزار تا سمشیر بابا، به آیه هفته دیگه کمیست روی مبارکی توبه رسیدیم در آیاتی که ماموسی ندرهی سلام در خودشون داشتن داشتند هفته احیای امروی معروف و نحی از هم هست آیه داجه با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه یکی از اشاره های مستقیم ماموسی ندرهی سلام در خطبه به این موضوع هست یک کمی بیشتر راجبه امروی معروف و نحی از مانکرست آمد <تصفيق> کنیم همان طور که خدمتتون عرض کردم با اینکه این آیه در سوره توبه وقتی که وظیفه مؤمنین و مؤمنات جامعه دینی ای که بر اساس توحید و اعتقاد به باورهای دینی شکل گرفته و هدف ارتقاء وجودی خودشون رو بر اساس دین تعریف کردن در هم بر این اساس جمع شدن خب امر معروف از منکر رو میگه اقامه سلات رو میده ادای زکات رو میگه یوتی ات... الله و رسوله او اطاعت خدا و رسول رو میگه بیان میکنن تو آیه آقا ابا عبدالله به این نکتی بسیار لطیفی اشاره میکنن که خداوند تو این آیه شروع میکنه امر معروف و نهی از منکر رو مقدم میداره بله چرا؟ حضرت باز خود چون دارن که امره به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام هست بلده. به همه اسلام هست و محافظه برای این که حق به حق بار برست دیروزم قرار شد به همین شبه هم سنده بفرمایید بفهمید برد برد خواهش میکنم این شُبهه ای که دیروز والا تو نمیدونم تو این وقت یا وقت دیگه حتماً جا جاوری کردن خدمتتون. چرا مقدم شده؟ چرا مقدم شده؟ با واسطه ولایت. چون ما تو روایت داریم در مورد نماز اذا قبولت قبلت, قبلت مناسبا یا در مود ارکان میگه ولایت مهمتنی رکنه. بله. اینجا امر معروف رو میده. حضرت نکات زیبایی که همی دو همین دو تعبیری که حضرت دارن مطرح میکنن که اذا اقیم ادیت و اقیمت استقامت الفرائات وقتی که امر معروف نگاهی که آقا با عبدالله به امر معروف یا یعنی نهی از من کردارن با نگاه ما خیلی تفاوت میکنه من. زمانی که امر معروف عدا بشود و به طبیل حضرت اقامه بشود همه فرائز تمام نظامات حقوقی، جزایی کیفری، اقتصادی تمام احکام اسلام که همه محدوده زندگی ما رو در بر میگیره استقامت پیدا میکنه فر. فریزه ها اونایی که واجب هستند استقامتشون محکم شدهشون به داشته شدن این فرائض با امر معروف و نهی از منکر هست دعوت به دینه دعوت به اینکه مظالم رو برگردونیم هر چیزی در جایش تعریف بشه در جایگاه خودش قرار بگیرد یه محافظه همیشگی امر معروف و نهی ازمون کرد کیا امر معروف بکنند در وحل اول علماء بزرگان و دانشمندان آیا اختصاص بر اونها فقط داره؟ نه المؤمنون اولیا و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض همه مسئولن نسبت به همدیگه. دیگه کلکم را و کلکم مسئولن الرئیت امر معروف از که هم دیروز خدمت شما امرنی طلب معروف نه همه خوبی ها بله. نه یعنی انکار بغض وقتی که شما از چیزی که خاک تنفر دارید نمیذارید دستتون خاکی باشه وقتی میید بچه دستش خاکی شد با همه وجودتون میخوایید که بشورد بله وقتی که عدالت تو شما مطلوب شما شد محبوب شما شد برای تحقق این ادالت همیشه به یک محافظ عمومی و جمعی و یک اراده عمومی برای تحقق این ادالت باشه ببینید ما حتی غیر از شیعیان و غیر از مسلمان ها گفتن که امیرالمؤمنین المؤمنین عدالت ادالت بود مجسمه عدالت بود همه وجودش ادالت بود. علی بدون امت و بدون اصحاب خوب آیا توانست ادالت رو به پا بداره؟ نه باش مخالفت کردن فهم ادالت درک عدالت تحمل عدالت. گفتی که از محققین میگه دو نفر از خلافات رو شدن. یکی به خاطر عدلش، یکی به خاطر ظلمش. علی به خاطر عدلش و عثمان به خاطر ظلمش بنی امیه رو مسلط کرد. تبعیض آورد. خب اگر ما بخوایم عدالت رو شاخص قرار بدیم، اگر بخوایم عدالت رو به عنوان حرکت انقلابی خودمون، اجتماعی خودمون به عنوان افتخار در دنیا که همین هم هست. انجام بدیم و به همدلله به خاطر تا که پیش رفتیم به خاطر فهم مردم، درک مردم، دیانت مردم و در حقیقت اهتمام مسئولین و رهبری به این امر بوده این مرتب باید به قول حالا حمایت بشه حمایت فکری، حمایت برنامه ریزی، حمایت اجرایی. محافظت بکنیم اگه تبیر که ازت داشتن مخالفت ظالم اگه کسی تعدی میکنه تجاوز میکنه دقیقا جلو بایستی از این همچین وسعتی پس اگه بخوام من خلاصه بکنم امر معروف معناش چیست؟ مطالبه خوبی هاست پس بعد ما خوبی ها رو نهادینه کنیم خوبی ها رو مطلوب کنیم و خوبی ها رو مطالبه کنیم درسته بخواهیم همیشه بله. که امر به معروف خواستن اون هایی که مفهوم شده است محبوب شده است و مطلوب شده است درست تا چیزی مفهوم نشود حالا شما من با خشونت به بچه‌ام میگم این کارو نکن ندونه چرا پنهانی این کارو میکن بعد بعد مفهوم بشود اینکه ارشاد تبلیغ رو میخواهد بله مطلوب بشود بخواد دوست داشته باش. فرهنگ اجتماعی ما نازن پذیر بشود فرهنگ اجتماعی ما ادالت خواه بشود اون چیزی که من برای خودم میخوام حتماً برای دیگران هم این که اولین صفتی که مؤمن داره انصاف هم تعبیری که شما فرمودید انصاف آنچی که بر خودت میخوایی دوست نداری که زیر خونت پارک کن خب زیر خونت کسی پاک نکن کسی نه حق تقر رو بزنه فکر نکن زرایی ببینید خیلی موارد ریز اجتماعی ما توی امر معروف می کن جد معمولا معروف ها اینجوری ان که ما خودمون باید دوستشون داشته باشیم باشه دوستش داشته باشیم و دوستش داشته باشیم جامعه تحقق پیدا کنه لذت ببریم وقتی که از دوربین بالا نشون مده نبینه که مثلا فردی همه ماشینا ما ما به عزت نامنظم دلیل نداره حتما پلیس ما ما بشه یعنی یک فهم اجتماعی بالای ایجاد بشه وارد مدینه میشنن در زمان رسول الله مغازه ها باز بودن اصلا نماز کی چه مغازه در خونه ها باز بود بانه. میگه که می وارد بشی سلام بکن پس معلومه در نمیخواستن بدن در باز بوده بانه. سلام میکردن جواب میشیدن وارد میشدن امکانات برای همه بود صفرا برای همه باز بود ببینید این قصثتی که به حمد در انقلاب ما به بخو خوبی بوده واقعا از شروع انقلاب که و مردم همراه بودن دیدن مردم درد از خودشون میدیدن بمبارون که میشد رستاهای اطراف داره خونه رو باز میکردن پذیرایی میکردن چهرهای بسیار زیبا از یه جامعه یه بالنده و اینه که چرا مرحله بعدی ما میان در خونه ها رو میبندیم نه تبعیض داره میان بین ما فرق شده چیزی که ادالت رو از بین میبره تبعیزات هست ادالت ر اختلافات هست باید. هر کسی می‌خواد آقا نبری میبره نخوری میخوره حق تم میخورن. آقا ابو عبدالله داره این نقطه مشخص میکنن اگر میخواهید فرائض استقامت پیدا کنه حتی نماز استقامت پیدا کنه من حالا بعضی موارد نمیخوام اینجا خیلی جزئی بشم نمیتونیم با سکه مردم رو نماز خون بشیم جوایز سکه بذاریم ماشین بذاریم نه قرض حسنه یک مطلوب جامعه ماست اگر فلانی میونه مازاد پول داره قرض الحسنه‌ بذاره و بانک های و بانک‌های خوش انصاف قرض حسن رو بدن به افراد مستحق درصد چقدر سود می‌گیرید بدن ناگهان میگی آقا داره خب کارموزو دولت بده بذاری فرنگی قرض الحسنه‌ دولت عمر قرض الحسنه‌های مردمی رو بست گفت قرض الحسنه‌ها دارن چی می‌کنن نمی‌دونم نقدینگی رو اضافه می‌کنن خب اب نداره شما خودتون هرچی نقدینگی زیاد بکنی نداره از مردم گرفتی. گرفتن داشتن یه سری از قزلون خوب کار میکردن تو محله این خیلی خوبه خب مردم جز به فامیل جز به با هم دیگه کاری که بعضی از فامیل‌ها انجام دارن بسیار معروف خوبی است آقا یه قزلون اسن تو فامیل خودت تون کنی این شبایی که می‌رید دوزن هستین ماهی یه بار روزه می‌گی خانومی که مصممته کار بسیار خوبه پرچم آقا ابو عبدالله رو زدید نگاه کن تو فامیلت کی گرفتاره بهش قرض کی میخواد عروسو ببره <تصال> به عنوان هدیه نرو برای چه تش بگی برو چه گیز نیاز دیگه ش باش معروف ها رو من احساس میکنم تنها نیستم ما مریضیم تنها نیستم همیاری و, و همدلی معنای خوبی ببین این معروفه معروف یه چیز ظمخ و آقا من تو خیابون راه برم به این آقا بگم آقا مو درست کن آقا دکمتو ببند آقا نم... نمیگم اینا رو انجام ندیم اول باید بفهم اینا حرام هست یا نه خیلی از بعضی که ما میگیم سلیقاست طریقه من معروف نیست یه مطلب تو معروف ها ریشه ها رو بگیریم اول با محبت، اول با سمیمیت اول خودمون ببخشیم او گرم بشه هر تنوری که میخوایی نون بپزه داغش کن چجور تنور جمعه رو داغ نکره یخ و یخ میخوایی خمیر مثلا ارشاد خود رو بهش بچسبن خب پس میزنه پس ببینید تحویلی که آقا باز من تأکید میکنم یکی اینکه ابر معروف مفهومش چیست. بله محدودش کدام است چه کسانی اهتدارش هستند محدودش همه اسلام رو میگیرن دعوت به تمامی اسلام است بله. بالا و پایین رو میگیره ببینید اگر آقا ابا عبدالله مدام معروف میگم رفت تو بازار کوفه میگه آقا ربا ندید چیکار خب یزید کار بهش نداشت عبیدالله خب کار به حضرت نداشت اگر میخواییم جلوی گلالود شدن آب زلال دین رو بگیری. کی بگیریم بینیم چی داره این بله بعد از رو پیدا بگیریم میگن خدا رحمت کنه من هم. کافی من یادمه یه منبر ایشون میگفت شخص اومد دید جوانش از مد... م... م... م... مکتب خانه اومده در طویله رو باز کرده اینا به جون هم دیگه افتادن رفتن تو مزده از بین میبرند چی میکنن اومد شروع کرد دنبال پسر دویدن همسرش گفت بابا اینها رو جمع کن چه فساد بار میارن گفت منشأش اینه یه اشتباه میکنی یه سیاست غلط تو مجلس رد میکنیم تبعاتشو رو مردم بدن یک سیاست غلط تو مجلس نمیدونم اینا رو مجاز بگم یا نه یک سیاست غلط فرض بگیریم ببینید نمیتون آقا نه دیگه اینا رو مثلا اینا رو نگید دیگه نه تا اینجا بحثتونه نه نه نیست ما میریم دنبال کنیم این سیاست های قلب من بند خدایی گفتم گفتم 16 سال مدیریت یه جار رو به 16 تا اشتباه نکردی خوالا اینو قبول کن چرا ما فکر میکنیم اگر ما بیم هیچ زمان امر به معروف و گفتن نقاط زعق تضعیف نه نسبت به جامعه نه نسبت به خانواده بله حرمت که پدر باید حفظ بشه اما پدر هم باید بدونه اگر مادر اومد بود تذکر داد آج آقا اینجور بد برخورد خود کردی بادو بپذیره شما بد تقسیم کردی محبت رو کار کارو نکن میایی سلام کن میایی حرف گوش بده پس ببینید امر به معروف نهی از منکر اساس است؟ بله. اساس هم درش دعوت است، هم درش حفاظت است، هم درش مطلوبیت است. به خاطر اینکه امر معروف و نهی از منکد تأثیر گذار بشود قبل از اینکه چیزی مطلوب بشود باید مفهوم بشود پس باید او رو مفهوم کنیم قابل فهم کنیم با ارشاد با گفتگوها عمومیش کنیم با انجامش اینکه بعد نماز به پا داشته بشه فرهنگسازی بشه بعد اون چیزی که مفهوم شده هست مطلوب شده است بهش امر کنیم بخواهیم مطالبه کنیم مطالبهش هم به این صورته که ما اولا نمیتونیم با بدی بدی رو برداریم یه اصله لا یجمننکم شناان قومن، الله تعذلو بدی دیگران باعث نمیشه شما با بد با بدی برخورد کنیم یه مطلب با معروف بد منکر رو برداشت بله منکر رو نمیشه با منکر رو این یه اصله با خوبی با آب باید کسافت رو پاک کرد کسافت کسافت رو باید نمی کن بعدی آقا نوزه بله فهش داده منم فهش میدم نه قصاص در فحش نیست درسته یه مطلب که با خوبی اول با خوبی با محبت همه ما یک حفاظی داشته باشه اگر همه ما برامون قوانین فلان قوانین برخورد خوب تو اداره جا برای اون مطلوب بشه بلید. نمیگی به من چه کار من را انداخت حالا حق اون خانم هم خورد خورد نه وقتی که اون طرف امینه ظلم کرده حق کسی رضاییه اولا من خودم حقی کسی رضاییه نمی کنم. میشه یک برنامه میشه یک کاره, کار کاربردی بردیه تأثیر گذاره, اجتماعی که همه میگن خیلی خوبه عالیه به هیچ بشت من بعضی موارد رو چون هفته امریم هم ندمون کرد اصلا من اعتقادات خودم هست خودم پاشو ایستادم هیچ بشت امرو رو ترخ نکنی خشن نکن محبت با محبت برخورد کنی من روحانی با محبت برخورد کن خودم رو خوب نبینم دیگران رو بد ببینم دیگران رو خوب ببینم ببینم یه ایرادی داره که اونو برداره برداشته بشه بله. خوبی ها رو ببینیم از خوبی ها شروع کنیم امر به معروف مقدمه امر اول اونا معروف ها مطرح بشه بعد نحی از است نگرسی در کنار هم دیگه هستن اما امر معروف مقدمه درسته خوبی ها شوی و پیدا نور بیاد در این جاها اولا تاریکی خواهد رفت بدی خودشو نشون بده زود قابله خاتها تلخش نکنیم اهانت آمیزش نکنیم باعث جدایی بین مؤمنین نشه واسه جدایی بین جامعه ها نشه بین ها فرقه ها افراد احزاب اشخاص ندیم من روحانی وارد جلسه میشم فکر کنن که آقا دیگه نمیشه حرف زد نه اجازه بدیم حرف بزنن حتی اجازه بدیم خیلی واسه میخوام نمیگم راضی باشیم به بدی اما اگر جلومون بدی کردن خیلی برا شفته نشیم خودم نظره نظارت میکنه بر ما داره میبینه دلست. زود قدیه نمیکنه میبخشیه تذکر میده از انبیار رو فرسته رو پاک کنه بس ببینید جایگاه و نقش امر معروف محدوده امر معروف رابطه امر معروف با فرایض دیگه بله. این متاری بود که ما به صورت بسیار فشرده من عضو میخوام از خدا که چون مخاطب من مخاطبین من مخاطب یک دست نیستن که من بخوام با آیات و رو روایات بگم عموم هستن من بخوام خاصه شون نکنم ولی به اینها توجه کنیم و یاد بدیم از خونه خودمون از بچه خودمون از دوست خودمون از نزدیکان خودمون اگر این حالت واقعی امر معروف که برخواسته از محبت و رحمت و رحمت دینی تو جامعه نهادینه بشه و همه یاد بگیرن نه تنها با گفتن حتی گویی با نگفتن با بخشیدن متعددی که آقای امام حسن مجتبی و آقای عبدالله در دوران کودکی داشتن پیرمردی بله. از کنم خدمت شما وضوع اشتباه اشتقام می‌گیره حضرت اومدن بسیار این امر معروف دیگه این نمود و نماد یک برخورد متین معقول و تاثیرگذار ما بدونیم یعنی مق... م... م... ذهنیت طرف مقابل خودونو بسنجی من خودم گاهی تو جایی عمومی که برم به خصوص نه جایی که فرض بگیرین افرادی هستن بعضیا میان مثلا هجابشون حفاظشون خب جوری خب میدونن من منتظر من بهش انتقاد کنم من آخوندم روحانیم اما میدونم حتما میگم خانم این ما شهید دادیم خجالت بکشید حیا کنید چی کنم من چی نمیگم چون میدونم میخواد من اینو بگم درسته خب پس من میخوام بگم که بدونه خب میدونه یه مرحله مرحله دوم چیکار می‌کنی خیلی آدم مثلا من خودم یک بار مشهد می‌رفتم خانومی بود با بچهش با دختر خانومش همی حالت خیلی چی داشت مرحله دوم دوستان ما که اونجوری چای بهشون تعارف کردیم دختر خانم کوچیکش اومد با خانومی که از دوستان ما دوست شد شد گفته کردن این کواشوا شها شکفته شدی دیدم با اینها خیلی عضو خودمو رو عرض می‌کنن خیلی زمخت و اینجون نیستن marmurak همیشه نیستن این نه میشه حفظت بعد یه واشوا شروع تا سوال کردن آقا مثلا چرا این چیز حرامه؟ چرا این چیز حلاله؟ میگن اینجوره خوب این ارتباط یه وقتایی ما احساس وظیفه میکنیم دوستم داریم که امروی محروف و نحیح ازمان کرد کنیم یه خود خودمون کم حوصله‌ایم. نه حسابشو نداریم، دوست داریم فقط بریم آقا بگیم این کارو بکنید دیگه، زود باشید این کار انجام بشه که ما بگیم آ ما به وظیفمون عمل کردیم، اینکه اینجوری نباشه. ببینید، عزم خواهم. گاهی ایب نداره، دو سه دقیقه من بخش بدن، این خاطرات برای میخواد دو, دو دقیقه، یکی دو, دو, دقیقه دو, دقیقه دو دقیقه. من سفری حج می‌رفتم. برادری بود، اکثر خانوادهام خانواده ها بودن. فهم. خدا خیرشون بده. مدیر کاروان بسیار متأسف و بسیار بداهم بود. بسیار آقا من نشسته بودیم یه خانم و به عنوان زائل مرفیش کرده اومد خب حسن ای بود خب هستن هجاب ایک کاش لخت بود بعضی از این هجاب ها بعض از این لباس ها اگر اوریان باشم خیلی جاذبه نداره این لباس جایی که پوشش باشه جذابتر میکن <تصحیح> از کنم حدود این که آقا من میزنم بیرونش بگم خانواده شهده سچارت از این خانم هم نقاش آقا شما وظیفه دادی من وظیفه ندارم پس شما سکوت کن هیچی نگه این موضوع کار منه موضوع کار منه نه. خدا خاستتش بیاد مکه منو تو چی کار این بگیم نه به مدی گفتم ببین فلانی من هر سال که میگن 50 تا سهمیه دارم این تیپا مال من حالا من میگم نمیگم چی شد آقا همین خانم تو بحث گفت گفت تنها خانه بود که تو مکه اتکاف رفت سه روز. در مسجد الحرام تو اون موقعی در کرد معتکف شد حتی یک ودم قضا نمی از اینجا با این لباس رفت از اونجا با چادر و مقنعه اومد که حتی اون خانواده ها شوهدان به این صورت نبود اما فهمید آمد درست که وقتی ما داش شومیمهت رسیدیم پایین اومد من خندید گفت خواهرم منو نشنا گفت تو اینجور شدی پد یه چیزی رو که لطیفی گفت. گفت فکر کردید حج معجزه میکنه. خدا دلاره کراها نمی نمیکنه برادر و خواهر فکر نکنی من خوبم نه فکر کنی خیلی خوبه اما اشتباه رو این اینجور با رفت و رحمت چه بسا با یه محبت دختر خانمی فرض بگیری خستست گرفتار دختر من هزار جور نمیدونم لباس و امکانات داره نداری میخواد خودشو نشون بده برو محبت کن برو برشه چادر قشنگ بگی بشه هدیه بده بوری کتاب بشه بوری اولو محبت چوری اون جذب ما بشه نه دفع از ما جاذبه و دافعه برداشت بشه اول جذبت این نوع روش ها. روشهای امر های و نهی از ما محدوده‌ی امر مرو و نهی. کسانی که بعد آگاه بد باشم من با جه من خودم آگاه نیستم میرم ارشاد کنم نمیدونم و چه راه میمونم خودم برام یاد بگیرم درسته کونو دعاتن ناس به غیر از کن به غیر از زبونت مردوم رو بدین دعوت کنید. وقتی ببینه تو برخورد من فقط من لغلغ زبان نیستم حرفم با عملم با برخوردم مناسبه در مؤمن همیشه دست دهنده داره زبان گویا داره چشم بینا داره مؤمن به مقدار ایمان شبیه خدا می شود به قدر ایمانه المؤمن یند رو الله به قدر ایمانه به مقداری که ایمان پیدا کردی مثل خدا بخشنده میشی بس. مثل خدا رحیم میشی مثل خدا رحمان میشی به اندازه حالا نگن خدا شدیم خدای گونه که میگن مقصود همینه که میگه با چشم خدا میبینه با دست خدا عمل می... دست دهنده میشه دست دست انت از... نمیگم خیلی بعضی از این گفتگوهایی که ما میکنیم کنیم برخاست از بغض ماست حسادت ماست کمبودای منه اینها باعث میشه از دین متنفر بشن نا من نمیخوام بگم نه یا آقا هفته امر معروفه دارم مارم چی میکنن؟ ارزمینه اگه میخوام تأثیر گذار باشیم تأثیر گذاری ما گذره از معرفت شناخت، ایمان، احترام متقابل هست اون میتونه تأثیر و همه فرائض هم با اون ای که دونه درشتار هم فراموش نکنیم درسته اونها رو مستثنا نکنیم از گفتار کردار و حتی برخورد لازم برای که اونا رو جا خودشون بشون با کاروان کربنام بسم الله الرحمن الرحیم همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم اقدامات الله ابن زیاد در کوفه موجب شد که هم شخصی همچون عمر ابن سعد رو تطمیع کند و همینطور او رو بترساند و بر اساس تتمیع و تخویف الله ابن زیاد عمر سعد حاضر شد به مقابله با شخصیتی همچون ابو عبدالله حسین علیه السلام مردم کوفه که اشاره شد بدنی داشت کوفه که در مجموع بنی امیه و حاکمیت همچون یزید اینها همراه نبودن اما به لحاظ تقوا و ایمان در درجه مطلوبی قرار نداشتند ولذا با تهدیدهای ابی عبدالله ابن زیاد رفته رفته کوفیان در کربلا حضور پیدا کردند همونطور که اشاره کردیم در برنامه دیروز با وجود اینکه گاهی چند صد نفر از کوفه اعزام شدند به کربلا اما تعداد چند ده نفری به کربلا می رسند و بقیه فا به فرار می‌گذاشتند و حاضر نبودند در کربلا حاضر بشن اما به هر حال از میان همون جمعیت حدود سی هزار نفر در کربلا حضور پیدا کردند و رفته رفته با تقابل این دو سپاه امر جنگ مسجل شد و قطعی شد و از اون طرف امام حسین علیه السلام همچنان مقاوم با استوار بر موضع خودش پافشاری میکرد روایات مجعولی که بعضا در برخی از منابع دیده میشه که نسبت داده اند به امام حسین علیه السلام که اون حضرت فرموده باشد که به صلاح من رو رها کنید تا برم دستم رو در دست یزید بگذارم یا برگردم به همون مدینه یا برم به یکی از مرزها همچون افرادی که در مرز حضور دارن اونجا زندگی کنم و از حقوق اونها برخوردار باشم این روایات قابل تأیید نیست با شخصیت عبابدلاله سلام سازگار نیست اون حضرت از حرکتش رو بر اساس عزت و کرامت انجام داده بود چگونه میتواند خودش پیشنهاد ای بده برای بیعت با یزید بنابراین اون حضرت استوار مقاوم بدون اینکه ای تردید در مسیرش بکند در اونجا حضور داشت هرچند سپاهیان کوفه رو به ازدیاد بودن و کار رسید به اونجایی که قریب به سی هزار نفر در مقابل حضرت بودن اما زرعی نمی توان در کلمات حضرت جمله و کلمه یافت که نشانگر پشیمانی حضرت یا ذلت حضرت در مقابل به هر حال اون سپاه انبوه باشد یا اون ظلمی که نسبت به حضرت داشت انجام می شد بنابراین اون چه که دیده میشه استواری حضرت در مسیر و پایداری اون حضرت از, از همون روزی که وارد کربلا شد تا زمانی که به شهادت رسید حسن... بازم گفترو کنیم با حجت فرسان و, و المسلمین استاد داجه بردین درباره خطبه منای حضرت اباعبدالله الحسین علیه سلام و حالا رسیدیم به امر معروف و نهی از منکر. آی لاجوری در خدمتیم. خواهش میکنم به خاطر اینکه امروز می‌خوام بحثم رو ببندیم و با دیگر رو متنح کنیم من دلم نیامد این تعبیری که ازت دارم و وسعت و گسترده امر معروف رو بیان میکنن این رو روش تکیه نکنم. حضرت بفرمایید امر معروف هم دعوت هست، هم مخالفت با ظالم درش هست. بله. هم تقسیم امکانات و قنایم هر هست و هم اخس است. بله. پس ببینید هم دعوت به اسلام یعنی تبلیغات در امر معلوم تبلیغات جزء امر معلوم دعاتون لعل اسلام. دعوت به اسلام جزء امر معلوم نه کرد. همون تعبیری که خدمتون از کنم که نتیجه این دعوت شناخت. درست. رد مظالمه شما نمیتونید با ظالم با هم بشینید با هم دیگه صحبت کنید رد مظالم دارید مخالفت ظالم درش هست قسمت الفی ول قناعیم همه منافع اجتماعی همه امکانات عمومی رو با امر معروف باید بخواهیم مطالبه کنیم این به حب جاش برسه وقت صدقات و تنها امر معروف گفتار نیست خواستن نیست اقدام درش هست بله، عقص صدقات که آیه قرآن به رسول میگه از انوال اونا برو بخود. بگی خود من انوال امزده لی تحیره هم تو به که پاکشون کنی اگر امکانات در یه جا بمالت امکانات مثل خون میمونه در بدن اگه یه جایی بمونه خود بدنم از نمیبره واسه سکته بشه واسه از دست افتمشه مال مثل خونو در یک جا نباید بمونه در دست یک عده نباید ببارد. جریان بعد اختصال... جریان داشته باشه میبینید اگه خون جو بی... چرا ربا رو حرام کردن ربایی که دیگری کار کنه من بهره ببرم چرا اومدن صدقات گفتن باعث حیات میشه واسه بهره میشه شما صدقه داری میدی میبرچیشه بهره برات داره وقتی که گردش پیدا می کنه بهرش هم شما می و وقتی جامعه حیات شادابی پیدا میکنه، اما وقتی که امکانات قدرت ثروت مکنت در جامعه دیری باید بچرخه درسته. در دست یک عده خاص نباشه ولی اون خاص خوب باشه ما خوب که پونسد نفر نداریم خوبانه دیگه داریم تو مدیریت های ما نما دیویس نفر بچرخه حالا این دوره وزیر نشدن، چهار سال دیگه وزیر میشن. چهار سال می‌میرن استراحت می‌کنن، اشکالی نداره. چرا جوان‌های دیگه نه یا آنجوری دیگه مطرح نشد چرا چون ببینید ما با فرصت دادن آش... آدمو بالندگی پیدا میکنن درسته. وقتی در یک جا بهونه ولی من این تأکید دارم اونایی که اه... کنایه های من رو متوجه میشن می‌دونن چی من دارم میگم. به صرف اینکه آقا اینا آدمای خوبی هن. این جریان آدمای خوبیه. این جدیان اصولگرا یا میم به ساعترب یا چه یا و به فوج این آدم ها خیلی خوبیم خوب خوبن اب نداره اما که گفتهشون ده سال مدیر دی جا باشن حالا از اینجا برن جایدی فرصت ها رو تقسیم کنیم مدیریت ها رو تقسیم کنیم بذاریم نسل جدیدی که میان نست قبلی رو پوشش بده حداقل مدیر بار بیاد. بعد با مدیر بار بیان فرصت ها رو بدیم چرا من مثلا دیدید بعضی از خانواده ها بچه دارن یه بچهش رو دوست داره سوگولی مامانشه باباشه هر کار رو میدم به اون حالا گاهن که ناشایستن هستن شایستن باشن دلیل نداره بغض ایجاد میکنی تو برادرها برادران خوب بغزی جا فرصت ها و امکانات و احتمام و حتی درود داریم که جایی سفره می بشینید بچه هاتون بشینید نگاهتون یک نوا رسول الله نگاهش رو عادلانه بین اصحابش تقسیم میکرد خود باعث سرفردگی دیگران دیگران به حساب باعث میشه که نکبت ها زیاد بشه خصومت ها زیاد بشه افراد عادت نکنن زیر بار برن پس ببینید تأمی... من از کلام حضرت دارم استفاده که من, اساس... من امام حسین سیاسی بود دیگه چیکارش کنه کنیم قرونش برم سیاسی بود دیگه هر کجاش رو سیاست دیگه نمیشه از سیاست, سیاست داشت کنیم بله یکیه دیگه و اخص صدقات من ها صدقات رو باید تو نظامی که متکی به امر معروف هست اخصش هم درشم احس صدقات صدقات این یعنی کلیه امکاناتی که از فقط صدقه نمیدونم کمیته امدادی که نیست که صدقات یعنی زکات این امکانات مالیاتی گفتم من همین نفت ما گاز ما ان اتم ما بعدها خاص امکانات مردم چه برای پیشرفت جامعه و این نظام اسلامی است که ما امکانات تو, تو تهران جمع کنی. نمی کنیم. نمیکنی این کار رو واقعا داریم پخش نمیدیم واقعا من خودم سالی یک بار تو ایران میگردم واقعا آدم و که جایی میره می, می شبیه تهران عنی واقعا احتماه و این ارزشمنده یعنی اون که کنار مرز نشسته ببینیم بی اون که که تهران فرصت های شغلی فرصت های علمی فرصت های اجتماعی فرصت های تحقیقاتی آماده است. این ارزشمنده من موااضه ها نظام متکی ام به امر مرو و نحی از کرد این هست که مواضع صدقاز رو میشناسد پس باید شفافیت باشد ما از مردم چیزا را پیهان کنیم مگه موارد خاصی مسئلهت مردم مردم با آگاهی با فهم به حقوقشون و آگاهی به حقوق مسئولیتشون هر دو هم حقوق هم و, و هم مسئولیت هم بهشون مسئولیت بدهیم و همشون کار بخواهیم من مواضعها و تعبیر زیبای آقا عبدالله علیه السلام و وضعها فی حقها تنها ببخشید آقایون مجریان از مردم خوب پول نگیرید خوبم بدید خوب عوارضو خوب میگیره حالا نمیگم مثلا کی شهرداری دارایی نمیگم که حالا من. من آقا به مقداری که خوب پول میگیرید محکم پول میگیرید سفت پول میگیرید پولم خوب بدید چرا پوست مردم کنده میشه اگه گذرشون میفته به یک مالی که دولت بگیرم پدرشون درمه چرا تعهد ندار انت باعث باعث چی کار کنی که منی که رفتم تو دستگاه اجرایی اصلا به جامعه خودمونم کار کارندم من دارم علمی بحث میکنم باید. وقتی که تو دستگاه اجرایی تو حکومت خشونت ببینید حریف حکومت نشه بدون مردم خوشونت نشون بود واستاپ و حکومت در تاوان پس جبران بره بکنه الان چیزی که به عنوان خشونت در جهان مطرحه در غرب مطرحه میبینن آقا مشکل پیدا کردم مشکل رو 99 درصد ریخت ی درصدات اصلا هیچ بیشترم بشترم تمتع برن این تبدیل میشه به هجوم تبدیل میشه به یأس تبدیل میشه به خشونت. به تظاهرات به خدایی نکرده بعدن تبدیل میشه به یادت مسائلی که تاوانش سخته آقا ابو عبدالله میفرمایند علما بزرگان رحبان شمای که جایگاه خاص دارید بدانید اگر به خاطر ترستون و به خاطر رغبتتون به قدرت و به ثروت و عموم مؤمنین و مؤمنات که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داری اگر این چیزی که استقامت فرائز به او هست فراموش بشود دعوت به اسلام از بین میرود مبانی شل می شود بی اساس می شود زعفا زیاد خواهند شد اختلاف طبقاتی ایجاد خواهد شد امکانات به جای خودش نمیرسه، خوب مصرف نمیشه و فجایه ای رو که در زمان ونیومهی اتفاق افتاد تا چیده شد ونیومهی دیگه با همه ی قدرت و مکنتی که داشت این مفاسد رو که ایجاد کرد از بین رفت تبدیل شد به یک حکومت دیگر حتی اقل و اون بافت تا چیده شد بخش پایانی اون با استاد لاجوردی به معرفی کتاب به پردازن استاد لاجوردی داخل مدیم <تص> یکی از کتاب های بسیار با ارزش که خصوص جنبه تحلیلی حرکت آقا با عبدالله رو دارن و به آسیب شناسی فرهنگ آشورایی هم انایت خاصی دارن کتاب هماسه از کنم حسینیز. حسینید که مردم شهید متحریب اون پرداختن در دو جل و بلای که ایشون تعلیف نبوده زخنانی هایشون رو پیاده کردن و یادداشت‌هایشون ولی واقعاً مبسه بسیار ارزشمندی از تحلیل حرکت آقا با عبدالله توصیف تماسه عینی در اون زمان خیلی مهمه بله بهش پردا آختن که که دنبال تحلیل هستن این کتاب رو مد نظر قرار بدن که این دو جلد هست و از کنم انتشارات سطرا که وظیفه نش آثار اون بزرگت بله. رو به عده دارد رو زحمت شد کشیدن و در اختیار عموماً مردم قرار دادن که موتورم مورد استفاده مردم قرار بگیره اگر دوستان بزرگ دسترسی به فضای مجازی دادن پایگاه جامع استاد شهید مرتضی متحدی در بخش انتشارات صدرا میتونن مراجعه کنن فکر می‌کنم فایل پی دی اف این کتاب هم موجود هست میتونن دانلود کنن و در اختیار بگیرن و بخونن خیلی ممنونم از دار شما و خداوند نگهدارتون باشه ان خیلی ممنونم ای امو تا ناله حلم مؤینت را شنیدم ای امو تا ناله حلم مؤینت را شنیدم از حرم تا قتل با شور جانبازی دویدم آنچنان دل برد از من بانگ حلم ناصر تو خاصینم را ز دست امنم زینم کشیدم گرچه طفلی کوچکم، اما قبولم کن، اموجان جان، بر سر دست تو من قربانی شش ماه دیدم. تا برون از خیمگه رفتی، دل من با تو آمد، تو برفتم رو حالی، من زماندن دل بریدم. جای بابایم امام مجتبا خالیست اینجا. تا ببیند من به قربانگاه تو آخر شهیدم ای دور گور نامرده ای خوش بر کجا به آتش بجو کجا حسن خیمه محمود کجا حسن خیمه حسن تو چشم شمع مداری کجا طاقت تیر نداره. تو که شمسیر ندار طاقت تیر ندار نرو کدا حسن گریونه می دون نیزه بارونه اینجا چشما گریونه می دون نیزه بارونه ای با همولم کشم زیره نیزه آشکونه پسر آسمونه بخش دیگری رو مخواب از این برنامه تقدیمتون کنیم که درس هایی از آشوراست در سخنان الاسلام و المسلمین استاد دهشی. بسم الله الرحمن الرحیم صل الله علیک یا ابا عبدالله پنجمین درس از آشورا صبر و مقاومت یکی از های مهم در میدان مبارزه صبر و استقامته صبر کلید حل مشکلات و وسیله آسانسازی سختیها و عامل ازمیانبرنده موانع میتونه باشه و هست خدا دستور میده به مؤمنان هم خودشون صبر کنند هم دیگران را به صبر دعوت کنند امام حسین علیه السلام که سنبل صبر و مقاومت و استقامت فرمود ایو الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف و تنل اس نفل یقم معنا و الا صرف عنا مردم هر کدام از شما میتونه بر تیزی شمشیر و ضربت نیزه صبر بکنه با ما بیاد وگرنه از ما فاصله بگیره میبینید که پرچم داره کربلا سخن صبر به میان میاره در روز آشورا به یارانش میگه سبرن یا بنیل کرام بزرگ صبر کنید یا در سخنرانه میفرماید فتق الله وص برو از خدا بترسید و سب پشه کنید و جالب اینه که هم خودش صبر میکنه همین سفارش رو به زینب کبرا داره هم به همه یارانش داره مثل حضرت علفاز علیه السلام در زیارتش می‌خونیم که ایشون در راه تو ای خدا مبارزه کرد و صبر پیشه کرد تا اینکه خونش در طاعت تو ریخته شد هر کی میخواد در کار موفق بشه بایستی از امام شیاب بگیره که صبر رو مقاومت رو پیشه کنه این صبر و مقاومت بتونه برای انسان راهگشا باشه و او رو به هدف برسونه این در لازم رو همام از آشورا میگیریم صبر رو مقاومت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 معنوش اینه این استمرار ماجرای امام حسین این از امروز دنیا پر از ظلم و جور است شما ببینید چه میکنن در فلسطین چه میکنن در عراق چه میکنند، در کشورهای گوناگون چه میکنن با ملت های دنیا چه میکنن با فقرا چه میکنن با های ملی کشورها چه میکنن ابعاد عظیم حرکت حسین بن علیه, علیه السلام شامل همه این میدان وسیع می‌شود